با بهترین آرزوها برای همه شما عزیزان. تازه های و این رو خدمتون عرض میکنم اویدوارم مورد توجهتون قرار بگیره کشف نوع جدید یک ابر میکروب در دانمارک محققان دانمارک نوع جدیدی از یک ابر میکروب محسوم به مرسا را کشف کردند. و احتمال میدن از طریق مصرف مرگ آلوده منتشر شده باشد محققان اعلام کردن افرادی که به دام پروری مشغول هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. دارند.بعقیه مقامات بهداشتی در آمریکا ابر میکروب مرسا، باکتری مقاوم و آنتیبییدیکی است و میتواند موجب طیفی از مشکلات بهداشتی امز، از عفونت پوسی، عفونت زاتریه و عفونت خونی شود. مزایای گوناگون سرکیسی برای سلامتی. سرکه سیب نقش مهمی در تعم سس سالاد بازی می کند. اما از طرفی باید آن را یکی از عوامل تأثیر گذار بر سلامتی دانست این سرکه در متعادل ساختن پهاش و ایجاد فضایی سالم و قلیایی در بدن بعد از خوردن یا نوشیدن یا حتی در مراقبت از سلول های پوستی تأثیر به دارد از طرفی گفته می شود که این سرکه باعث کاهش مشکلات حازمه شده به کاهش وزن کمک کرده و سلامت پوست را بهبود میبخشد در اینجا به برخی از فواید آن میپردازیم سرکه سیب هاوی اسید مالیک بوده که در کاهش شدت برخی مشکلات حازمه مانند یوبوسد یا ریفلاکس معده تاثیر دارد و از آنجایی که خواست ضد قارچی ضد باکتریایی و ضد ویروسی دارد یک یا دو قاشق غذا آن در 250 گرم آب مانع از بروز مسمومیت غذایی خواهد شد. بسیاری از افراد عادت دارند پیش از خواب یک لیوان آب داغ همراه با سرکه سیب و اصل بخورند. این کار باعث تحریک قدرت برانگیختگی خواب شده و در نتیجه خوابی آرام را به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان میدهد که سرکه سیب میزان گلوکوز را کاهش می‌دهد. همچنین باعث تنظیم فشار خون شده و کلسترول را کاهش می‌دهد. سرکه سیب این قابلیت را دارد تا کلسیوم موجود در میوهها سبزیجات و گوش را جذب کرده در نتیجه باعث استحکام استخوانها و دندانها شود بهران استفاده نکردن از صابون در غرب چند سالی میشود که مقامات بهداشتی کشورهای گوناگون غربی از مردم این کشورها حقاظا می کنند برای سلامت خودشان هم که شده دست خود را پس از دستشویی رفتن بشویند با این حال همه این تلاش‌ها نتوانست به خوبی به سمر بنشیند و مطابق با نظرسنجی سال 2015 درباره این موضوع نشان می دهد بسیاری از افراد از انجام این کار ساده نیز سرباز باز می در این نظرسنجی به رغم اینکه 95 درصد مردم ادعا کرده بودند دست خود را با صابون میشویند، انتشار جزیات این تحقیق نشان می‌دهد که در واقع فقط ده درصد از آنها واقعا این کار را انجام میدهند به همین خاطر بود که مقامات بهداشتی کشور انگلیس تصمیم گرفت با تراحی پوسترها و هشدارهایی نسبت به عواقب خطرناک نشستن دست پس از دستشویی مردم را به این کار ترغیب کند این کمپین‌ها البته فقط در انگلیس اتفاق نیفتاده است و همزمان با روز جهانی شستن دستان بسیاری از سازمانها و نهادها تلاش می کنند تا به مردم بفهمانند شستن دست با صابون تواند خطر آلودگی میکروبی را به شدت برای آنها کاهش دهد و ابتلا به هایی چون سرماخوردگی را کم کند آمارها نشان دهد که چهار نفر از هر پنج نفر در جهان پس از خروج از دستی دستانشان را نمیشورند نکته جالب این است که این مسئله صرفا در کشورهای عقب افتاده وجود ندارد بلکه در کشورهایی که دارای آب لوری کشی وسایل بهداشتی و فرهنگ بالا نیز میباشند اتفاق میافتد آمارها نشان میدهد که در نود درصد خانهها در هندوستان و نود و چهار درصد خانهها در کنیا صابون یافت شود حتی در کشورهای مانند اتیوپی که صابون به کمتری میزان وجود دارد رقم پنجاه درصدی را شاهد هستیم با این حال همچنان جهان از استفاده نکردن سابون صابون رنج می‌برد. در نظرسنجی دیگری که موسسه گالوپ انجام داده 65 درصد اعلام کردند که خود خود به خود دستشان را با صابون میشویند در حالی که 8 درصد هیچگاه این کار را انجام نمیدهند نشانه های افسردگی را نباید نادیده گرفت. افسردگی یکی از بیماری های شایع قرن حاضر است. که طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 350 میلیون نفر در سراسر جهان به آن مبتلا هستند. این بیماری که گاهی از آن به عنوان سرماخوردگی روح یاد می شود، مانند هر بیماری دیگر دارای علائمی است که با تشخیص به موقع و مداومت در روند درمان امید بهبودی کامل فرد را وجود دارد. علائم مربوط به افسردگی پایدارن بیش از دو هفته در فرد باقی میمانند و بدون درمان از شدت این علائم کاسته نمیشود. شدت بروز علائم افسردگی در هر فرد متفاوت است اغلب اوقات این بیماری ناشناخته میماند و فرد در سکوت از بیماری خود رنج میبرد. در مقاله پیش رو 8 نشانه شایر این بیماری را بررسی می‌کنیم عصبانیت و کژخردگی معمولا در افراد افسرده الامی مانند آشفتگی بیقراری و خشونت دیده میشود به گفته دکتر رابرت لاندن عصبانیت عاملی برای ماندگاری افسردگی است به توصیه ایشان هر فردی که به طور مداوم در رفتار خود پرخاشگری و خشونت را تجربه میکند یا به طور غیرمعمول و به سرعت عصبانی می شود باید برای پیدا کردن راه حل درمانی مناسب از یک مشاور و روانشناس کمک بگیرد. خودانتقادی خود انتقادی تفکر نقادانه فرد در مورد رفتار خودش است به وسیله این تفکر می توانیم نقط ضعف هایمان را بشناسیم و از اشتباهاتمان درس بگیریم اما جنبه مخرب خود انتقادی زمانی بروز می‌کند که فرد با یادآوری مداوم اشتباهات طوفانی در ذهن خود به وجود می‌آورد و در نهایت با ایجاد احساس گناه عزت نفس را در خود از بین می‌برد. ناامیدی بگرد دکتر وینگ یکی از بدترین علائم افسردگی ناامیدی است. ناامیدی در افراد افسرده آنان را از درمان بیماری خود باز می‌دارد. افراد افسرده که اقدام به خودکشی می کنند معمولا کسانی هستند که به دلیل شدت نامیدی به درمان و بهبودی خود امیدی ندارند روانشناسان بالینی از دانشگاه دولتی اوهایو میگویند ناامیدی در افزایش میزان افسردگی نقش دارد ناامیدی در افراد افسرده با بروز شکست ها تشدید می شود این شکست ها واقعی یا خیالی هستند و خود انتقادی در ایجاد شکست های خیالی نقشه مهمی دارد از دست دادن علاقه از به این رفتن علاقه در افراد افسرده چنین توضیح داده می شود؟ افراد افسرده علاقه خود را نسبت به چیزهایی که قبلا از آن لذت می بردند از دست می دهند. کارهایی از قبیل تماشای فیلم ورزش کردن و بودن در جمع دوستان تغییرات کاهش وزن فرد افسرده تمایلی به غذا خوردن ندارد و از غذا لذت نمیبرد. از سوی دیگر ممکن است به دلیل پرخوری عصبی برای ایجاد تغییر در شرایط خود عمدن یا سهوً شروع به غذا خوردن کند. عدم تحرک ناشی از افسردگی نیست در افزایش وزن نقش دارد. اما در ماه بیش از 5 درصد تغییر وزن میتواند خطرناک و در مورد تشدید افسردگی فایش باشد. خستگی دکتر فراند درباره خستگی در افراد افسرده چنین توضیح میدهد؟ گوی بدن افراد افسرده تحت فشار زیادی قرار دارد. این حالت با ایجاد التحاب همراست و این التحاب در ایجاد خستگی نقش دارد. افرادی که از افسردگی، رنج میبرند علاوی مانند خستگی، تنبلی و ضعف جسمانی دارند. در خواب این افراد بینظمی مشاهده میشود و این بینظمی خستگی را تشتید میکنند در این افراد خستگی به صورت لکنر زبان، بیحالی و حرکات آهسته بدن دیده میشود دردهای بی افراد افسرده از مشکلاتی مانند درد مهده، درد مفاصل و کمر شکایت میکنند انتقال دهنده‌های عصبی سروتونین و نوراپینوراپینفرین نیز تنها بر حالات روحی بلکه بر برخی از فرایندهای بیولوژیکی و عصبی بدن نیز تأثیر میگذارد و ممکن است سبب ایجاد درد در بدن شود. افسردگی در نحوه تشخیص درد در مغز نیز اثر می گذارد. روش روش‌های درمان رفتاری شناختی و دارودرمانی به صورت جداگانه و یا همراه با هم به درمان افسردگی کمک می کند این بیماری در برخی از افراد به راحتی و به سرعت درمان می شود و برخی دیگر نیز نیازمند درمان مستمر هستند به خاطر داشته باشید نادیده نگرفتن نشانه های ابتلا به افسردگی و مراجعه به پزشک اولین گام برای درمان این بیماری است تنتان به ناز طبیبان نیازمند مواد تندرستی تون پایدار